اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه انشق القمر به نام خداوند بخشنده بخشایشگر قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت و این یرو آیت و سحر مستمر و هرگاه نشانه و معجزه ای را ببینند روی گردنده میگویند این سحری مستمر است و کذبو و اتبعو اهواء و كل امر مستقر آنها آیات خدا را تکذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی مودند و هر امری قرارگاهی دارد و جاءهم من به اندازه کافی برای بازداشتن از بدیها اخبار انبیا و امتهای پیشین به آنان رسیده است حکمت بالغه فما این آیات حکمت بالقی الهی است اما انذارها برای افراد لجوج فایده نمیدهد دهد فتول عنهم یوم یدعو الداعی الى شیئن نکر از آنها روی بگردان و روزی را به یاد آور که دعوت کننده الهی مردم را به امر وحشتناکی دعوت میکند دعوت به حساب اعمال خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم, كانهم جراد منتشر آنان در حالی که چشمهایشان از شدت وحشت به زیر افتاده همچون ملخهای پراکنده از قبرها خارج میشوند محطعین در حالی که بر اثر وحشت و اضطراب به سوی این دعوت کننده گردن می کشند کافران می گویند امروز روز سخت و است. کذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر پیش از آنها قوم نوح تکذیب کردند آری بنده ما نوح را تکذیب کرده و گفتند او دیوانه است و با انواع آزارها از ادامه رسالتش باز داشته شده فدعا ربه انی مغلوب فانتصر او به درگاه پرورگار عرضه داشت من مغلوب این قوم تقیانگر شده ام انتقام مرا از آنها بگیر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمیر در این هنگام درهای آسمان را با آبی فراوان و پی در پی گشودیم و سنجرنا عیونا فالتقل ماء علی امر قد قدر و زمین را شکافتیم و چشمه های زیادی بیرون فرستادیم و این دو آب به اندازه مقدر با هم درآمیختند و دریای وحشتناکی شد وحملناه علی ذات و, دسر. و او را بر مرکبی از الواح و میخای ساخته شده سوار کردیم تجري في جزاء لمن کان کفر مرکبی که زیر نظر ما حرکت می کرد این کیفری بود برای کسانی که به او کافر شده بودند وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ ما این ماجره را به عنوان نشانهای در میان امت ها باقی گذاردیم آیا کسی هست که پند گیرد؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي اکنون بنگرید عذاب و انظارهای من چگونه بود؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قرآن را برای تذکر آسان ساختیم آیا کسی هست که متذکر شود كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قوم عاد نیز پیامبر خود را تکذیب کردند پس ببینید عذاب و انذارهای من چگونه بود؟ اِنَّا اَرْسَلَّا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِم مُسْتَمِر ما توند باد وحشتناک و سردی را در یک روز شوم مستمر برانان فرستادیم تنزیعون ناس که انهم اعجاز نخلیمون که مردم را همچون طنه نخل ریشهکن شده از جا برمیکند عذابی و نذر؟ پس ببینید عذاب و انظارهای من چگونه بود فهل من ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم. آیا کافی هست که متقزیر شوید؟ تا یفی سمود نیز انزارهای الهی را تکذیب کردند. فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه اینا اذل فضلای و سعور. و گفتند آیا ما از بشری از جنس خود پیروی کنیم اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خواهیم بود من بل هو آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده نه او آدم بسیار دروغگوی و هوس بازی است ولی فردا میفهمند چه کسی دروغ گوگ حوض باز است این نه موسییلون نهقاتیفید لهم فران تققیب هم وطی ما ناغه را برای آزمایش آنها میفرستیم در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن ونبیهم ان الماء قسمت بینهم. محتضر. و به آنها خبر ده که آب قریه باید در میانشان تقسیم شود یک روز سهم ناقه و یک روز برای آنها و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند آنها یکی از یاران خود را صدا زدند او به سراغ این کار آمد و پی کرد کان عذابی و نذر پس بمگرید عذاب و انزارهای من چگونه بود اینا ارسلنا علیهم صیحتا واحده فکانو که هشیم المحتضیر ما فقط یک سیه سائقی عظیم بر آنها فرستادیم و بدون بال آن همگی به صورت گیاه خشکی در آمدند که صاحب چهار پایان در آقل جمع آوری می کند للذكر فهل من ما قرآن را برای یادآوری آسان ساختیم آیا کسی هست که متذکر شود؟ كذبت قوم, قوم لوط بین انظارها را تکذیب کردند. ان حاصبا الا الوت نجينهم بسحر ما برانها توند بادی کریگ ها را به حرکت در می آورد فرستادیم و همه را حلاک کردیم جز خاندان لوت را که سحرگاهان نجاتشان دادیم نعمت من عندنا کذالک من شکر این نعمتی بود از ناهیه ما این گونه هر کسی را که شکر کند پاداش می دهیم و لقد انذرهم بطشتنا فتمارم بین او آنها را از مجازات ما بیم داد ولی آنها اصرار بر مجادله و القای شک داشتند و لقد را و عن ضیفه فطمسنا آنها از لوت خواستند میهمانانش را در اختیارشان بگذارد ولی ما چشمانشان را نابینا و محو کردیم و گفتیم بچشید عذاب و انظارهای مرا و لقد صبحهم بکرتن عذاب مستقیر سرانجام صبحگاهان و در اول روز عذابی پایدار و ثابت به سراغشان آمد فذوقو عذابی و نذر و گفتیم پس بچشید عذاب و امزارهای مرا و لقد یسرن القرآن للذکر فهل من مدكر؟ ما القران را برای یاداوری آسان ساختیم آیا کسی هست که متذکر شود و جاء آل فرعون و همچنین انذارها و هشدارها یکی پس از دیگری به سراغ آل فرعون آمد کذبوا بآیاتنا كلها فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر اما آنها همه ای آیات ما را تکذیب کردند و ما آنها را گرفتیم و مجازات کردیم گرفتن شخصی قدرتمند و توانا خیر من ام لكم ام لكم في آیا کفار شما بهتر از آنانند؟ یا برای شما؟ اما نامهای در کتب آسمانی نازل شده است یا میگویند ما جماعتی متحد و نیرومند و پیروزیم الجمع و الدبر. ولی بدانند به زودی جمعشان شکست میخورد و پا به فرار میگذارند بلی الساعت موعدهم و الساعت ادها و امر. علاوه بر این رستاخیز موعد آنهاست و مجازات قیامت هولناکتر و ترختر است این المجرمین فی ضلال و سعر مجرمان در گمراهی و شعلهای آتشن يَوْمَ يَسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ در آن روز که در آتش دوزخ به صورتشان کشیده میشوند و به آنها گفته می شود بکشید آتش دوزخ را إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم و ما امرنا الا واحدتون كلمح بالبصر و فرمان ما یک امر بیش نیست همچون یک چشم برهم زدن و لقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر ما کسانی را که در گذشته شبیه شما بودند حلاک کردیم آیا کسی هست که پند گیرد؟ و کل فعلوه شیم فعل و هر کاری را انجام دادند در نامه های اعمالشان ثبت است و کل و سااقی و هر کار کوچک و بزرگی نوشته شده است این المتقین فی جنات ونهر و نهر یقیناً پرهیزگاران در باغها و نهرهای بهشتی جای دارند مقعد عند ملیک مقتدر. در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر